بگذار تاز شارع میخانه بگذاریم که از بحر ای همه محتاج این داریم روز نخوست چون دم رندی زدیم و عشق شرطان بود که جزره آن شیوه نس بریم جایی که تخت و مسند جم میرود به باد گر قم خوریم خوش نبود به که می خوریم او که دست در کمر او توان زدن در خون دل نشسته چوی آقوت احمری واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما با خاک کوی دوست به فردوس ننگریم چون صوفیان به حالت و رقصند مقتدا ما نیز هم به شعبد دستی برآوریم. از جرعه تو خاک زمین در روله یافت بیچار ما که پیش تو از خاک کمترین حافظ چره به کنگره کاخ وس نیست با خاک آستانه این درب سر بریم